بسم الله الرحمن الرحیم درس امروز ما و شما اصلا چون یکی از روزای ماه بارک رمضان است درس نمی خانه میوزش یک قصه جالب است که در یکی از شهرهای امریکا رو داده این رو قصه میکنم برای تا خواب بسم الله الرحمن الرحیم ما و شما نیده که پر در تا نهست زورت نیست دود بین قصه مسلمان شدنه جوزف ادوارد استس جوزف ادوارد استس یک عالم است از شهر تکساس آمریکا. این تصویر قبل از مسلمان شدنش است و این تصویر است که حال فعلا مبدل به یک عالم و به یک دعوتگر شده که در شهر تکساس امریکا دیگرها را دعوت میکند به دین مقدس اسلام و اگر سایت اینترنتیش کار داشته باشین سایت انترنتیش هم www.islamalways.com اگر این سایت باز بکنین شما میتونین که مستقیما به امراه از شخص صحبت بکنین از طریق اینترنت میتونین به صحبت بکنین امراه اش باش دوما پر فرستید خب www.islamalways.com قصه مسلمان شدن جوزف ادواردس چه قسم است؟ جوزف ادواردس خودش میگه میگم من ماستریم مادم در هنرها آرت من ماستریم مادم در گرفته بودم. مثل که با پوانزای هنرها داریم و دکتورای در کریستیانلیتی یا در مسیحیت در ریلیجنز در دین شناسی یا مسیحیت شناسی گفتم من دکتورای ما داری گرفته میگه وقتی که دکتورای گرفتم من از طریق دو چیز یکی هنر و دیگه پدرم چون بزنیسمان بود تجار بود از طریق تجارت من از دو طریق مگه من تقریباً چندین میلیون دلار کمایی کردم چندین میلیون دلار ولی مشکل اساسی من چی بود مشکل اساسی من بود که من آرامش داخلی نداشتم به خاطر چی فکر می‌کردم خب من منقدر درس خواندم، اول نمره فارغ شدم لیسانس ماستری دکترا ها ولی یک روز اگر یک تکر شد و یک اکسیدن شد زندگی من کلش ختم بشه و باز اعلان میکنن فلا نفر هلاک شد من هم هلاک میشم پس چی ضرور وقتی که این قسم زندگی داشته باشم ای ضرور است که من که امرای یک نفر که او شریک تجارت ماست برو امرای زو صحبت بکن و در باری مسائل تجارتی که تزو تصمیم بگیره نمی گذارش تجارت یا پارو آمده بساز مگه من گفتم درست است وقتی پرسانش کرد که نامی چیست مگه پدرم برای من گفت که نام ازی نفر محمد عبدالرحمن است چیست محمد عبدالرحمن است مگه وقتی که من دیدم که نام ازی محمد عبدالرحمن است ازی خاطر میگم من برای پدرم گفتم که من میخوام که از این مسلمان ارتباط بگیرم من میخوام. قد ازی مسلمان ارتباط بگیره خب چرا امرائی مسلمان ارتباط نمیگیری؟ خاطر ازی امرائی مسلمان ارتباط نمیگیرم که وسایل اطلاعاتی که در قد امرائی اگه که تروریست است امرائی ملاقات بکنم. ازی خاطر میه که من برای پردرم گفتم که من ملاقات نمیکنم. چرا مگه برای ما گفته شده که مسلمان ها خدا را نمیشناسن علای عزو و اینا یک صندوق سیاره در عربستان سعودی پرستش بکنه مگمه برش گفتم که پدر نو برمک بچه این گپا نگرد تو منایی یک مسلمان کوشش بکن که چی باید بکنی؟ تو مسلمان استی و سعی و تلاش بکن که به یوز ازی که پشت گپا بگردی موضوع تجارت است با شما تجارت خدا پیش میبریم. میگه رفتم امرائز مسلمان ولی میگه من چی تصور داشتم که اگر میک از این مسلمان ملاقات میکنم شایدی یک آدمی باشه که امرائز کتک کتک چسبیدگی و قواری بسیار خشن با بسیار خشونت که من رو بیبین اول سر عمله بکنن ولی میگه برعکس امرائز مسلمان میک رفتم که ملاقات امرائز شیش چیم در جای چای خوردن از پیشش پرستان کردم که به خدا ایمان داری؟ میگه مسلمان گفت الحمدلله رب العالمین ما به خدا پاک ایمان دارم میگه پرسانش کده آیا ایمان داری که حضرت ابراهیم علیه سلام پسر خود حضرت اسماعیل میخواست خاطر خدا قربان بکنن؟ میگه مسلمان گفت بله، ما کاملا ایمان دارم میگه من پیش خود فکر کردم که ولی یک انسان است که هم به خدا ایمان داره هم به برای ایمان داره پس و مشکل نیست که من کریستیان یا مسیحی بسازم. خب چندین ملاقات کردیم دیدیم که یک عادت بسیار خوب داشت هیچ وقت سر دین من تجاوز نمیکرد. هیچ وقت خدای من را بد نمیگفت. هیچ وقت کتاب ما را بد نمیگفت. آرام امروی من صحبت میکرد. الفاظش بسیار معدبانه. و با بسیار اخلاق ولی یک صفت داشت که هر وقت گپ میزد گپش از علم و دانش و فهم بود از معلومات از اخلاص گپ ناخی نمیزد که از دل خود گپ بزنه خب، خود بلاخره ما سه ماوات مشکل بین ماوازی پیدا شد و یه مشکلی بود که ای بیچاره جای بود و باش نداشت میگم من به پدرم گفتم پدر اجازه میتوی که ما امی محمد عبد الرحمن رو در خانی ما بیارم چون ما دا خانی داشتیم که منزل پایینش تاقاش بیکار بود منزل بالایش ما من امراه فامیل زندگی میکردیم میگه پدرم موافقه کرد وقتی که پدرم موافقه کرد میگم من چی کردم میگم من محمد عبد الرحمن آوردم ده خانی ما خانی ما یک زن بود که او هم در مسیحیت و در دینداری خود بسیار قوی بود و بسیار معلومات داشت میگه من چی کرد؟ ما کرد میگم من دیدم که یکی من هستم یکی هم خانمم هست پس ما میتونیم؟ ولی در دل شک بود که نشه ما دو نفر این مسلمان قناهت داده نتانیم من در خانی خود را جای دادم هدف مایی بود که در خانی ما باشه و من ایر مسیحی بسازم میگذی خاطر مرفتم یک کس یک کشیش رو پیدا کردم که در تکساس امریکا به نام این میشنرز ای ها عادت شدن است که مردم کار میکنن که چه مردم مسیحی بسازن رفتم میرم گفتم خب آقای کشیش تو خودت خب میشنر استی و انسان استی که این کارو میکنی این تو ما یک کار پیدا کردیم میخوایم که مردم مسیحی بسازیم مودو نفر ما و خانم ما میشه تو هم سوم نفر شوید که سه نفر دلیل ما قویتر شود ویر مسیحی بسازیم میگه خانمون گفت که ای کشیش گفت که درست است که کار میگه کاشیش آمد در خانی ما منزل پایین گفت میزمانیم در سر میز کل ما گفت همون تو گلت سیستم محمد عبدالرحمن گفتیم که اگر ما در باری دین بحث مناقشه بکنیم پرابلم گفت نه نو پرابلم هیچ مشکل نیست بفرماییم میگه برش گفتیم که اگه دلیل ما قوی شود، و تو قبول میکنی؟ گفت یک مسلمان همیشه حق قبول میکنه. به که تو حق گفته بتاری و من را قنات بیتیم و چرا قبول نمیکنم؟ یک مشکل اساسی میگم ما نفر داشتیم. من خانم و کشیش. مشکل ما سی نفر چی بود؟ میگم مشکل ما نفری بود که بسیاری مردم فکر میکنن که فقط یک بایبل است. کتاب مقدس که اونا میگن اونا فکر میکنن که فقط یک بایبل هست بسیاری مردم رو تو فکر میکنن ولی میگه یا اشتباه میکنن که کسایی که ایمان دارن بایبل پروتستانت بایبل کاتولیک و بایبل گروه دیگه شان که ارتودکس هستن بایبل هزینا یک چیز نیست سه مذهب سه عقیده مختلف است. از اومشم چقدر نداره او با او در نداره او با او نداره مگه ما سه نفر مشکل مادهی بود که پیش خانم هم یک بایبل بود پشمه دیگه بایبل بود پیش کشیش بایبل دیگه بود ما سه نفر خود ما مشکل داشتیم. حال چی کنه؟ حال اگر خواستگاری آدم بره بره که داماد نسواریست است و بد اخلاق از خو نمیشه؟ مجبوری اگر رای حال جور کنیم سگره تنم اشناسه و نصوری نیست دوات بسیار خوب است گفه حال ما به خود مشکل داشتیم که حال ما درست است که دوین خود این مشکل را درک میکنیم حال اگر میره بخیزه ما برای این مسلمان بر ما باید خوب یادر من در بایبل تیمان برم در بایبل خانم تیمان بیارم و یا از بسیار این چندین مگه ما کشیدیم. بعد از که خیناعت کردیم که باید یک بایبله بگیره باید بسیار زامد کشی خب مگه ما این کار کردیم ما دیگر روز از مسلمان آمد و شیشتیم و همون اختار اختیار کردیم که اینی بایبله کتزی در مناخشه میگیریم یک وقت میگه سعیل میکنیم که مسلمان و یک کشیش از مسلمان یک سوال کرد چی سوال کرد؟ میگه سوال کرد برش گفت که کدام کتاب حق است کدام کتاب حق است تو میگی کتاب ما حق است ما میگیم کتاب ما حق است یعقوب دوام میگه کتاب ما حق است کتاب, کتاب, کتاب شما حق است یا کتاب ما بگه مسلمان گفت که قرآن از ایشون حق است چی دلیل داری گفت دلیل از است که این کلام خداوند است و خداوند کلام خود را حفظ کرده چه قسم حفظ کرده گفت شما بفرماین برین در تمام کشورهای اسلامی و در کشورهای غیر اسلامی پیش هر مسلمان که بیری پیش تمام مذاهب مسلمان ها برین یک قرآن وجود داره قرآن شریفی که با الحمدلله رب العالمین شروع میشه و با سوری قلعوضو براب الناس ختم میشه خداوند متعال مکمل ای رو حفظ کرده مگه یا گفتن که این پاسی ولی ممکن نیست در چاردخ هم چوتو یک کتاب یک حرف میگه او گفتن بخ... اینمی ما ثابت میگن کلام خداوند است چه قسم می رو حفظ کرده خداوند گفت این رو تو نیست که در روی ورقا حفظ شده باشه تنا این قرآن شریف کتاب است که در قلب میلیون ها انسان حفظ است در قلب میلیون ها انسان این میلیون انسان از قلب خود از سینه خود این قرآن شریف و با دیگه شاگرد خود انتقال میده. در طول چارده قرن شما نشان بتین که کدام کتاب در دنیا وجود داره که ست نفر رو مکمل حفظ کرده باشه آیا کتاب های شما بایبل شما بیار ست نفر که بایبل حفظ کرده باشه بیارین یک ست نفر خیلی بگی برای من تکت بده که برای چند میلیون حافظ قرآن بیارم کی رو ساخت که باید قرآن حفظ بکنن؟ چی علت بود که اکثر ای مردم این کتاب حفظ میکنن؟ در انجینری کدام کتاب هست که کلا حفظ کرده باشه؟ نیست. در تباز نیست. در سانس کدام کتاب هست که کلش از اول تا آخر حفظ کرده باشه؟ در هیچ علم نیست. یعنی کتابی که در کل دنیا از علف تا بیا از اول تا آخر کلش مکمل 300 حفظ است. در سینه های میلیون ها انسان این کوران است. چرا که خداوند متعال میلیون انسانه تابه کتاب خود ساخته. پارچه. تنها سی سفلا را حفظ نکرده 140 سورهش مکمل حفظ کرده خداون تنها 140 سوره را حفظ نکرده آیت با آیت کلش حفظ کرده تنها آیتایش حفظ نکرده حرفای کلماتش هم حفظ کرده تنها کلماتش حفظ نکرده حرفایش هم حفظ،, حفظ کرده و تنها حرفایش حفظ نکرده حتی حرکتایش هم حفظ کرده دمی جای دنیا که بری الحمدو دالش پیچ داره این جای دنیا نیست که قرآن شریف بخونه باقیه الحمده یا الحمده این از کجا بشن؟ گفت محمد عبدالعامان گفت اینمی کلام خداوند است که خداوند چهارده قرن را حفظ کرده برو دیگه کتاب ها را بخون ده سال پیش شکت ام سال چه قدر تغییر داره؟ یک قرن پیش کتاب شو بخون کت امروز تغییر داره یگانه کتابی که یک قرن پش شوان پیدا کن نسخی قرآن در روسیه. یه تلویزون نشان هم داد که بعد تلاه شده نسخایی که شده که این از عهد حضرت عثمان است و آل تابال اونمو قرآن که در حصل حضرت عثمان را فیلتالا عنه است اون رو قرآن ازی مشارک مشاره که نوشه شدن تابال هم در بعض موضی ما هست اونمو قرآن با قرآن امروزی یک حرف فرق نداره چرا؟ این کتاب خداست؟ هست میگه اینمی دلیل که گفت میگه ما د دلیل نداشتیم چرا که ما می دیدیم که کتاب ما این قسم نیست بلاخره مگه ما صحبت های خود دوام دادیم و بعضی از آیات را میگه یک پروفسور دیگه است که او برام دکتور میلر از کانادا است او به حساب اجاز علمی قرآن مسلمان شده مگه وقتی که ما دیدم که در قرآن عزیمشان دلایلی است که به ساینس تکنولوژی امروزی موافقت داره میگه روز بروز عقیده ما به دین خودم ما زیب شده میره و عقیده ما به دین اسلام بشتر شده میره و محمد افدرامان آجز آرام و او نماز میخونه که وقتی که استاد میشه نماز که میگه الله و اکبر استاد میشه در مقابل خداوند متعال جل جالهو میگه من با پنج میلیون چش میلیون دلار اما آرامش ندارم در کشور های اروپایی در فرانسه سی میلیون تابلیت خو استعمال خو برش مشکل روانی داره. مسلمان که 33 سی سی مرتبه سبحان الله 33 سی سی مرتبه الحمدلله 34 بره الله و اکبر کی گفت خرفش خوش میبره تابلیت است. میگه ما میبینیم که محمد عبدالعامان آرام تو نماز میخونه، ما فکر میکنیم مثل که یک ملایکی از آسمان پایین شده و این ملایکه اینجا استاد است رفتیم در مسجد وقتی که میگه ما مسلمان ها ما وقتی که در مسجد میریم دا کلیسا میگه وقتی که ما میریم در کلیسا وقتی که میری تو خو... مستقی من خدا گفتن نمیتونی پناییت مجبور بری پیش کشیش Oh فادر، I'm criminal I'm guilty برای زو میگه که من گناگار هستم من مجرم هستم گناهی مره ببخش همه میگه برعکس زو وقتی که ما رفتیم در مسجد هر کسی او نیت میکنه و با خدای خود خودش میزنه. گفت میجنه الحمدلله رب ایا کن عبدو خدای تو را عبادت میکنیم یا کن اصلا مستقی من از است خدا استعانت میخوایم کجاست پیانو ما در اوجه بریم تا وقتی که پیانو نباشه عبادت نمیشه برادر ای خداوند مطال جلاله تنها برازی نیست که باید پیارو بذاری برش گفت وقتی که مزید دیدیم در وجود ما تاثیر کرد که سبحان الله این جایست با لزو آمدیم به خانه گفت سن از میگفت ما سه ماه شد سه ماه مکمل سه ماه آباد سه ماه آباد گفت کشیش مرا گفت که آقای ادوارد جوزف سس گفت بله گفت که باز بریم امروز به مسجد نگه من برش گفتم که والا امروز من کم مشکل دارم امروز مسجد رفتن نمیتونم. خودت کات کشیش برو گفت میریم یک دفعه باز مزید تا میگه دیگر شد شام شد خفتن شد ناوخ شد کشیش شام نامد و محمد عبد الرحمن هم نامد و خدای چی گفت شد سر از یا میگه دمی تشویش میدم که زنگ دروازه زده شد وقتی که زنگ دروازه زده شد دمی لازم میگه دیدم که دروازه رو باز کردم سعی می‌کنم که محمد عبدالرحمن است کشیش کتشتیس طاریکیس یک کس دیگه است همراهش یکی از کشیش چشوت یک کس دیگه است یک سفید در سر شانه اش است و یک دسمول هم سر شانه اش است یکی و کشیش چی گپ شد؟ می کشیش گفت که ببین ما با شما سه ما بحث کردیم، تحقیق کردیم، ذمامت کردیم. كل گپایی که محمد عبدالرحمن می از قلب پاک با دلیل با منطق واگپای ما شما کلش قرائتی که رسول الله میگه از این خاطر میگه ما در مسجد رفتم راه دیگه نداشتم بجز از اینکه بگوین که لا اله الا الله محمد رسول الله ايراد یک دفعه یک لا اله الا الله بگین بلان الله اکبر زیادشه بلان لا اله نشد باز ایناله این مگه مسل... وای کشش چون مسلمان شدی من تو را توی را شکار کن تو خود شکاری اینجا شکار شد میگه رفتم بالا دویده دویده بالا برو بالا رفتم پیش خانمم. خانم, پس خانم چی گفت گفتم خبر داری محمد عبدالرحمن او کششی که کتش بود چی که ده کشش مجنر. متخصص مسلمان شد میگه خانم برای من که عزیزم اگه خفه میشی من هم میگم که لا اله الا الله محمد رسول میگه من نزدیک از اصحابم خراب شدم دیوانه دیوانا شدم خانم ما مسلمان شد کشیش هم مسلمان شد مبدبخت در حق هستم یا اینا به حق مراست راست میگم یا اینا راست میگه میگه رفتم در بستر خواهم نمیبرم آخری دیدم که خواهم نمیبره چطور کنم چطور کنم مگر رفتم که محمد عبدالرحمن قرار خوست. رفتم از استیان گفت که محمد عبدالرحمن بخی چی میخوایی؟ بگو برادر من نزدیک از دیوانه شد بخی برای من حق بگو میگه محمد عبدالرحمن بر من تشریح کرد که برادر عزیز خدا یکیست است قل هو الله احد بگو خدای یکیست است الله الصمد خداوند بی‌نیاز است لم یلد و لم یولد و لم نه خداوند از کسی پیدا شده و نه کسی از خداوند پیدا شده و نه خداوند شریک و مانند دارد عالی مجسمه ای را که شما آوردین در بین کلیسا یک کسی رو ببینی صاحب اونجا بری خب اول خداوند پشا نداره باز اگر الایاز بالله خداوند بچه نمیشه همین قسم نیم لباس داره نیمش نداره شما تصویرای امی ایسای مسیره که ora میکشن تصدیر یک پیغمبر خدا را به یک شکل بسیار توهینامه است این میتونه که مارا نجات بده؟ از این خاطر محمد عبدالرحمن برش میگه که خدای یکی خداوند آشاری که از خداوند و بچه نیاز نداره این کس که شما برام ایسا میگین این بنده خداست کل ما بنده های خداوند است کل ما پیش خداوند انسان ها مخلوقات است کل ما عبادت خدا میگه بالاخره یازده بجه روز یازده بجه روز شد و محمد عبد الرحمن برای من میگفت میگفت میگفت بالاخره در یازده بجه روز میگم من هم صدا کردم که لا اله الا الله محمد رسول الله هم مسلمان شدم اینالی این جوسف ادوارد سیست که قبلا به این صورت تصویرش بود بالزی آله ای این بادانستان حق بادانستان قرآن مبدل به چی میشه؟ مبادل میشه به یک مسلمانی که آل فعلا به نام شیخ ادوارد استس است. این واسنین که در سایس درس میخواین، کامپیوتر و اینترنت خوب بلد هستن. شما این سایت یک مرتبه باز بکنین و این رو ببینید که چه قسم گپ میزنه و ببینین کسایی که توسط از این مسلمان میشن چه قسم کلمه میخوان و به این شکل مسیحی به یک انسان مسلمان تبدیل میشه وانا در روی سینه شلاله آه الله محمد رسول الله و آن فیلن میگه من خوشبخت و تمام مال و پیسه و پول خدا کلش در آی خداوند و یک دعوت دعوتگر بزرگ در شهر تکساس امریکا علت مسلمان شدنش چی بود؟ علت مسلمان شدنش یک شناختن قرآن عزیمشان بازی میکنه من قرآن خاندم اتخنه بود قرآن شریف هم اگه از اول تا باخل با ترجمه مکمل اولش علت مسلمان شدنش شناخت قرآن عظیمشان علت دوم مسلمان شدنش ملاقات با یک مسلمان که دین خودم میشناسه میشه که یک مسلمان اگر دین ناشناس رو میشه چایدی هم گمرا میشه با یک مسلمان که واقعاً اسلام شناخته قرآن شناخته ارتباطش دلیل سیومش ارتباطش با ایک مسلمان با تقوایی که نماز میخان نماز یا زور نور پخش میکرد مسلمانی که نماز میخان نمازش پیغمبر سلام وقتی که دوست خدا به طرف آسمان در جنگ بدر بالا کرد خدا پنج هزار ملایکر رو برش روان کرد با یک مسلمان که وقتی که نماز می که وقتی که بیبینه به دور تبدیل می شه. وقتی که بانور تبدیل میشه، وقتی که نماز می غیر مسلمان در تحت شهای لایزه از این زوب می میشه. اینال مسلمان با تقوی در نور مسلمان با تقوی غیر مسلمان ها زوب میشه. اما تو قسمت تیس تیس نماز میخوان، خونه سلم که توی چی میکنی؟ کنی؟ البته بیشهار زیاد کند اینجای کار داره و تیزست خانده می رو اینالی هستن، سوام علتشی هست که قرآن عزیم و شان کلام خداست در قلب ملیون ها انسان حفظ شدن حفظ قرآن در قلب های مردم و حفظ قرآن مکمل و عدم اختلاف در قرآن سبب شده که مردم مسلمان میشن اگر مسلمان هم اختلافات خود ترک بکنن به قرآن تمسک بکنن، دیگه گفار ترک بکنن، پشت دیگه چیزا نگردن کلشو هر مسلمان میتونه که سطحها غیر مسلمان و مسلمان بسازه چرا مردم مسلمان نمیشه؟ وقتی که میکی این مسلمان در کلی زو و مسلمان در کلیه زو و یک چیز میگه و دیگر چیز میگه اینال قرآن پشکش نمودن دین حقیقی قرآن حقیقی قرآنی که انسان هدایت میکنه دیگه دلیلش ایجاز علمی قرآن است موافق بودن قرآن عظیبشان با ح وقتی که قرآن میگه که کوه ها را ما مثل میخ ها در زمین نصب کردیم امروز زمین شناسا من و کتاب دسته میکن و میگن که شکل کوه ها در روی زمین مثل میخ و را نصب است به می اندازه که در بیرون است به می اندازه دیگه یا زیاتر از این در روی زمین در داخل زمین میخ و زده شده برای برانو مسلمان میشه علتش اجازه قرآن علتش تاثیر